گویگرانی عزیز و خوشویست و عشنان و حوگرانی دنیا کتب سلاوتن نبید، خوشحالین لبشی سی و هشتی خوین چشتی مجوری هجاری مکریانی هتی نوالاتن، فرمون هاور من بن. حجاری مکریانی لکتیبی چشتی میجورده، بس لشیانی خویده که لوکاتی لگل مال و مندالی لولات سوریا بو لما لحاج و جیعون ترک تورک لومال بنده خطی سنوریان دور و دریج منچند بو کلا قاچخچی بتاقی زور جار کردی بس از من باو منانوه دا کجران بلا مزور بای قاچخچی کسربازی تورکیان کرده بو منکانیان بردی دکاندارانې تربسبی بشي زوري قاپورمن بو برتیلش زوری کرده کرد جندرمان مریان بو قاچاقچی لده خوري تفنجان ددانې لارض سوریه تفنجان ورده ګټوا ملا زوبرناويک لاوي چی خلقي شاری شاري ميديات ده هټه جزيره کټېمو کوده کرده و جای رګ درنګ تر لا پيشوهاد بو جراموا ل شاري نو سيبين شكنين ينم ديواني بیه سی دیار بکر لیدا افسری که درجه سروان هد کلبچه کردم و خست میان ناو جب بودیار دیار بکر لریا زور پاراموا. ل راموا لناو شیویگ دمانشه با دستا و دای بزندم گتم دم کجه تا که باش بر وز لیدم بکر منجی گوتی سی کری سی کری که وقتو مالی هزار کردویران دکا کتی بی کردی لپوستی سنوره و دینیه جور برو راکا ایدی خوی برو نوس کلمه دیاد له پاش سردن مالوا بنو سیمین ده ختمه و جندرمکان دسته ماز کړم د انګو خواجه تومن ګرت جناب سروان هاته وفرموي چې به کار هم معنا حدیث بون حسنغه حاجه که مزن معاشرت بو به جہلۍ تمورجن کې زنه و تمبر یمن بمزانی به تمبوری کنه هغه حوله دا فرمکه بلم هر چی کړی وکړان دی نمتواني قام هر دو دستم یک را کار که ناچار وازم لحنو زورم زکبه نازیره که سوتا زور لا قدیمه و یکی لو ماله هر نوی حاجو بوا حاجوی نازانم چند پشت پیشو عبد الرشیه بوا و قاوچی دیوانی بوا پشت او پشت او رشانه بوا بونه کردیش هر رش بون هر قاوچی بلام عبد نبون تایفه اک لنو هورکان هن دالایم قدیم لحندوستان و هاتون بوانه دالایم مطریب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 چند نکته کمیک هردو تشعرو لدیوانه کم داره. شوآنکه ده حتی دیوانه مرد و دینای پیکانی، کمن دم دی، پیر، بور، دموش‌چاودریج، باکوخا کوه بو. نو ماش نامهای پیکانی نیاید روس کرده بو کلا بر دیگو هر دبو عفرینی لبکی. شبک زور کوهی. یکی گویی شیخو. آدم مردنه حتی وا. گویی دمد مردنی من زورن. یشتہ پیدانہ بون کمر د نم نزیک به توا سگنا ورن کر نازرن قل ناقرن زور علامات دش پیداده بن کپیت نالیم لا سئی کشه کلدانیانی د کردو ل خوشته کی به میګو د ګوت کلدانیکان سویند اند خور دی ګو تاو کشه بلم لق سکنی تی ناګین دی ګو بوت تی ناګین دلیم ای کلدانی خوشو استکان اگر پیرامید کی لاوازې به هيځي هفته ساله لا دا قوم بکنو با پیلاقه بشنسري لوانی نفس تنګ به امين له اند پر سي شیخو قطنا چوي هي شاریک دیغو بلې جار یک بیر د زورنا بو داوت لیدم کاری اوم حبو بیر د یم جوړ یک غوتيان دستا می زکم لقاف یک داسوری غواردو چنگ یک بوگنی کوکردو بلوت می دادا لتا وان گوم لبیر چووا هات مو داوت ثنگا تاوبم وتم کورینا من هل لدشت ریاوم بخیری ختان بم گین چولک لا یک پیشم کوت دستم لسر شانيب نبم لبازار وروتیا پرین لوبر لوبر دیان پرسی اری او شیخو بدست اشارم دکرد نا من گوت جابو بقسنند گوت نا گوتی د ترسام هل لبزم بگره لخواره وهل رجه شیخو د جرايو دیوت شوی کیمان گشو لسرد یک چوبو ما سر پيشاوي خيالات برد بو ميوه لفرضيتم جوژي كلك پيشمو د روا كوت مسري بو از باو لاتوم هر دبي بتگرم هر پلم بوده بردو بردستم ندهاتو سربراو جر پلم بو بو لخوار گردی پرم پیدا کرد بداخوه جوجک نبو سلکه گوی نانی هرزنی خوام بو چی روکی شیخو نابره نو یک جار زورن زوربه خلقی جزیر لبریانو بو یک تری اگیر نو دلخوش کری شیوخ شیخ کی همو جانکس کی ملبه متو موری ریش سپیو دست بچوار 4 مرید ودا بزن کنه بون شیخ لتنیشت حسن آغال لای سرودا نشتبو هر یک دو دقیقه شوشه کی تنکلای له بخلی سالته درنه قومی شلی خوردوه بونی عرق زحلاوی دی وخانی دادګر شیخ د میشله دعا خوندنه د وستا کرسیان قربان او شیه دی خویاوه وتی والله من نه خوش درمان د خون یو نام ناشن من شیخ شبکانم دایکم خزمي حورکان بو هاتوم سړي خزمان بده کروکالی مال حاجو جګل پیاو پیرکان هم شو عرق اند خوړدو بل عمل کی ندیاري دی وخند بو شو غچن یا شیخ فرمو هنان جوړه پتل ل بیس عرق ل سرمز ریس کرابو پیان ګوت فرمو فرمیا شیخ تو نه عرق د خویتو فرمو امه شهونه خوشي دل شیخ کزانی بوی ارغد ناسنو فری و ان بونه وړد هر نیو شو بجهشت بونو ل شرم زریان خویش تبو شیخ ابراهيم حقي شيخي هرګوري جزيره بو حاتبو و دیدنی حسن اغا لای سروی مجلس د نشته بو وتی آی بدا خوا حسن اغا پیر بوی او جوته بوی bale bale ya sheikh توش pir bwi idi zamana ya sheikh ibrahim gutu bwi are پیری لکن یه وداس پیدا که عجوجویی لپنجا لشست لحفتا هر یک قسم ایجاد کر. گوتم اجازه هی من کیش ببرم شیخ نید ناسیم حسن غاقوتی بالای فرم و قطعا پیو هر وقت کلخو هست او از پیش خوی حل نستابو او پیری جیوت. اینتر نب عمره نب موس بیبودن. شیخ خوی با وی کردو کرد تو زنی و شواین تک ن. لپر لپر مې په کنینې دا وتی خبرې ویه او چکسه او جر بزمکه بوبو میجودیت نه و تولکام سالو ملد لپیری نه و کابرګ بو عبدکی کړه درو نخوندور بلم بدم دا زو زیدک شریکل دی وخند مل عبداس کبا قولي خو حم سید هم خلیفہ هم حج جر شوته حج مل عبدکی تونې جنکی کافری ایو شوتی ما موستا اگر شادو ایمان بین مسلمانم او تیباله او تی لباشت حفتاه جوان مدنی ایو شوتی باله اگر نوشبکی عبد کیوتی خزمینا لاسدس یوان جگل شادو ایمان هنن کم یک یکم یمنجچه با ما موستا سودا کم د قلب کا جنیک هله تپاله پستر حفتاه ورخومی نظر دکم او جنیم داتی ملا به وچانو بوچو عبد کی له و درچو دی گوت زانی ايوهيش برواناكا حوريه دنا كان بيساليق السوداء وابا بر والد سیدی کردیان زرد لاترکیا و حتی بوژزیره دیانبر دسر قبران بزنیم مردوکان چونه تا وقت چایی لگد ناآول لپر یهودی کشی. یاهو مردود حالی خوشه مزجیم دیا مردود لعذاب دیا خیری باب که به با هر دوک برنده هر خازن جی خوبه روزهک عمدیه بسی بره و لرگی قا مشلی توشی سیدی مردو نزدی دایونودستی مزدکا پیداله قربان فرم سوار با ايوش دالي نا حراما کرد ببارا دالي قربان تو بركتي كراكم به سرد بي شيخ لسر سواره و سوارا عبدكيا كريبو لدخوري پي دالي قربان با گريوك بكين دالي نا گريو حرامه ايوش دالي نا نا او حرام نیا پرسر اكد دکم داكم اگه زانيت کلشير اكم هيا بود سرد بروم قبله مردوناز دالي زور باشا عبدکه دلی اولباری سواری بودی چی داده؟ اول دلی دسیلیدم؟ عبدکه دلی بله. پس حلو فنی جواب دلی با من گنمارش می. عبدکه دلی نهیر نذانی او جاریش خاطرت. کبرد دلی ها. زنیم جای؟ عبدکه دلی او جاریش خاند به کبرای مردون ها. تکایشتم هر زن. عبدکه بوق تکی بوق کلی خوری نپیه یکی بناوشانی سید بر د بیته بوخته کندره د خبر هه سید بهوش له قراغری د نو جاده د تراوتو پولکه شه جمیل حاجو گتی عبدکی کارته اگر جگل له توبه پولکه اندبل د پیم پی ام گوسکب تو لبن 2 متر قلا و د مردو حالی چیه لو دیوچوالیک و نازانی بغره چبلیکن ما آخر له دیم هرزنو جو گن مشامچ کمونیستی خالد بغداد قائل دکرد. بهزاران لکرده جزیره بوبون شیوعیو هربقت زمانی من دالی منو نمازیکی لتویز لحالی بوبون. دبواه لسرخمان چوار تلیزگنم عضو رج نوری عربی بدنو بیاندهت. به بی اوقات یان عربی بزنی هر خوب شدنی لشم بکریا کردکانیان با گوپال دبرد. ل بغدادشونی پلیسوس سرش کنده هر آوان بن. وکیلیان لتربسی احمد انترنامک لکاوه خانه کوی دکرنو او روزنامه نوري بو دخوند نو لسری رو پر بری ستون متونی نه دزانی راست ته تا او سر دچو ګال تجارت جواب پیاو لپیکنیند دمر جاري ګوت موانه به نشان دا کرستونه سر بخویا بروانه لهند کنه سراوه پښتموی لفلان رو پر ده ګوتې ها هو تو من دې شکره من هر وخت خو می دخویم مو کی پین بلې لماسکو ام قسم با پیاوی که زور زل بناوی ولوشین که اندامی سیکا بوجیه راوه زور پیا کنی بلام گوتي توله نکته دروز کردن دا وستای روش یک پینچ کز گندی و ملایک بنای و ملا سولیمان لگونده که تراوه بونه لام بونه لم گوتيان سیدای هجار کشمانه ستالین نویجی بجمعات دا کردیانه و تم که که او دبی حوال خالد بگداش بزانی ویا کامجر کچو مقامیشلی زور به تاسو چوم دیدنی جګر خون رئیس فرعی حزب کومونیست جزیره کناوی رمبو للایبو سید جګر خون فرموی امروز زور تاریخی هزار جګر خون یک تر دبینن روی کړ در رمو حوال هزار شلخو مانو لسرفکری منه وتم یواهیا خوينه بیر د چته تولرګ کومونیست ده من بوی یک کومونیستم خوښ که وک جیبو کرد کورد به جان نه فکر من یکه یالک جداه لو ساوه د ګل جګر خوين توا بوينه آشنا جګر خوين خلک حساری بردس ترکانو تا ګربوا هر شوانو نخوند وربو با ګوری چوت ناوفقیان بوتم لایمز مزگود. لملاتی بیزاره. جبو شاشکی فردا او ملیله کورداتی ناوه شعر لرونهیو حواردام چاب و بود خوشویست کردن تینوی ازادی لسوریا و ترکیه ده، دیوانی که با یکم جار چاب کراو و نادر بود دیهاتی نو کردن ده، دیگ دیوانی که برکوتوه، پر پراشیان کرده و بود پیروزی وقت نوشته لسر مندالانیان دروه، کم کم لکردهاتی پشکشه کرده و بود حوال کومونستان و شرکان سور هلگر من که دیتم، هاوکاری لجنه نوچه شویه قامشلی ده کرد، بلان به اندم قبول نکرابو لجیانی دا زوری چرماسری بو چند جار حبس کرابو جزره بدرابو من دالي زورو نانی کم لو پارینه دارید دشه خوراک خو یو منالي اغلب نانی وشکو چابو جریوابو چاش نه بو رموی رئیسلر نه کچ سیوات کیبو که کاری کیبون ناويکم لبير نه ماو پی ام واي نه ی پروبو رښو سپید لگ نه زور وشکو دواته شبو هر دی ګوت هر شته دلم من بد دلیل علمی پتان اثبات دکم روز جمعه دواینوژ گلا سوفی خیرجدار تزبیح بدستو به دو اخیرندن دسن مال رمو دایشی رمو دلم لمانیا کارتانچی دلن خود خوها ما ام شوینا خاتینا جمرامو جمرابیجی اوی دانی آی بالام لو سرو سکوتانا لنوی جمعه او هاتونه فربون ریش سگ رموی من هزار جنو به خدا کته کناق انشلی د جام زور کز دهت نه لم کورد زور توخ کومونیست ملا حجی او همو بابتک مجلس ایوان نن خوش بو جره یک یک زور گرم ل کورداه تی دنیوان فراد لسر کردستان دا کناوی ابدی تلو بو موتی هر کی د نیوان کوردستان حسابو دا جکراوه سید جگرخون فرموی نخیر ام جزیرش مال عرب او یم بنا رواتی عجین. اب چاوی پریا پشتی سری کرواتی گرفت و بر مست و زلیدا هینکن سیدا من لدز دره نو ب عبدیم گود جاری تر نایو دیدنیم درم کرد پاش او به ماوی کلد کی دولمند حسکی بنو سعید به ماشینی خو سیدا منی بر دگران بونه عشایی عربی شمر شوگ میوان شیخ عبید ناو بوین که شیخ بر باب کی شمر بو رشمل قصره سحراو چندین کادیلاکی ل دوري رشمل شیخ دل خوشید دامه ک سرتيري بم جن مبوبينو دلمندمکا ديارنم دخرد شو توتنم پینما بو شو نار دي ل شروكي کی ترکي نزيكس نور همو جوره جغره توتنو پريان بو هينه عربي کی شارستاني ل يبو قدر یک لا قمشلي حاکمو استاش ل حسکه مرکزی استاني جزيره دبيته مدع العام گوتی من یه دگال تندم، باران ولنجی زب و شیر لسه رم مینو، راجدواری میوانی رشماری شیخی که عربی کونه کرد بنویش شیخ محمد بوین، زمانی بدایان بو، دیگه گذ کردم، لپاستاش جنیب بر نسل عرب داد، لبر پیان هرچی که لی مابوه، بی بو جرای نوام، جنرالی فرانسوی حت حس که لعشاری جر روا، هر سرکی نسبی اصل عربی حقوقی بو دبرتو، نورم هد چو مجر. خنجرکم لسرمیزدانه گوتم او نسبمو خنجری کرد ناوی با پیرما حقوق زیاتری با برما و دربو اشعاری جیرانی زوری لاترسن یه گرانی لیرتا لیره دابمشیویا دینکوتایی بشی سی و هشتی ای خوان نوی چشتی مجاوری هجاری مکریانی تا بشیگیتر و لشویگیتر در پیتندگی نوا شوتنارم تن آرام، شد.